از سر تا سر خیابان کربماخر عبور کردم و سر پیش به خیابان نتسماخر پیچیدم هوا خنک شده بود و در ویترین بعضی از ها چراغ روشن بود مجبور شدم تمام خیابان نتسماخر را بپیمایم تا یک مغازه لوازم تحریر فروشی پیدا کنم در مغازه روی های کتاب قدیمی همه چیز به شکل نامنظم یا روی هم و یا کنار هم قرار گرفته بود روی پیشخان یک دسته ورق بازی به چشمی خورد که ظاهران کسی آن را دیده ولی نپسندیده بود. او کارتهای فرسوده را کنار پاره شده قرار داده بود. یک آس خشت که خشت بزرگ وسط آن رنگ رو رفته بود. و یک نه پیک که تا خورده بود. حتی خود کارتها هم پخش و پلا بودند. کنار یک دست کاغذ که یک نفر برای امتحان روی آنها چیزی نوشته بود. دست هایم را رو روی پیشخوان گذاشتم و به دسته کاغذ نگاهی انداختم. روی آن خطوط پیچ در پیچ دیده می شدند. حلقه‌های در هم و بر هم کسی که خیابان برونو نوشته بود. اما اکثرا امضای خودشان را امتحان کرده بودند. از حروف اول اسامی می‌شد تشخیص داد که به دستشان حرکت سریعی داده بودند. به به‌خصوص ماریا کلیش را که با حروف محکم و منحنی نوشته شده بود خواندم. و یک نفر دیگر هم اسمش را مثل کسی که لکنت زبان دارد مقطع نوشته بود روبرت ب روبرت بر روبرت براخ خطی زاویه دار قدیمی و تاثیر گذارنده. و به نظرم رسید که باید خط یک پیرمرد باشد یک نفر نوشته بود هایریش و با همان خط گل فراموشم مکن. و یک نفر هم با خود نویس نو نوشته بود کله‌ی حقیرانه سرانجام سر و کلی زنی پیدا شد که صمیمانه سرش را تکان داد و هر دو ورق بازی فرسوده را دوباره داخل کارتون گذاشت. ابتدا پنج تا کارت پستال گرفتم. از دسته کارت هایی که جلویم گذاشت 5 تای اولی را انتخاب کردم. تصاویر پارک‌ها و کلیساها و عکس از یک مجسمه که من هنوز ندیده بودم. نامش ندول بود مردی را از جنس برونز نشان میداد که با دامنی برتن و یک کاغذ لوله شده در دستانش که در حال باز کردن آن بود. در حالی که کارت را به زن جوان میدادم از او پرسیدم نلدول کیست؟ او هم کارت را با کارت های دیگر داخل پاکت گذاشت. زن جوان چهره خیلی مهربان و گلگون داشت از وسط موهای تیرش فرق باز کرده بود. و مثل زنهایی به نظر می که به سومه سرا می بروند. گفت نولدول سازنده و معمار نرداشتاد بوده است. من نرداشتاد را می شناختم. بلند اجاره آن شبیه خانه مسکونی یک آدم از طبقه متوسط در سال 1910 بود. تراموه ها اینجا می پیچیدند. ماشین های پهن سبز رنگ که به نظرم خیلی رومانتیک می رسیدند. به همان اندازه‌ای که به نظر پدرم در سال 1910 یک کالسکی پست رومانتیک می رسید. گفتم متشکرم و فکر کردم پس در روزگاران قدیم برای این کار از آدم مجسمه یاد بود درست می‌کردند. زن جوان گفت چیز دیگری هم می من گفتم بله لطفاً آن کارتون کاغذ نامه را به من بدهید. کارتون بزرگ سبز رنگ را. در ویترین را باز کرد. کارتون را از آن بیرون آورد و گرد و خاک روی آن را فوت کرد. نگاه می کردم که او چگونه کاغذ بسته بندی را از یک لوله مقوایی که پشت سرش به دیوار آویزان بود می کشید. و من آن دست های کوچک زیبا و کاملا رنگ پریده را تحسین می کردم. و ناگهان خودنویسم را از کیفم بیرون آوردم. سرش را باز کردم و اسمم را زیر نام ماریا کلیش روی دسته کاغذی که دیگران اسمشان را امتحان کرده بودن نوشتم. نمیدارم چرا این کار را کردم. اما چیزی تحریکم کرد که نامم را بر روی این تکه کاغذ جاودانه کنم. زن جوان گفت آه میخواستید خودنویستان را جوهر کنید؟ گفتم نه. و کردم که چگونه صورتش گل انداخت. نه، خودنویسم را تازه پر کردم. لبخندی زد و به نظرم رسید که احتمالا فهمیده چرا این کار را کردم. پول را روی پیشخان گذاشتم دست چکم را از کتم درآوردم و روی پیشخوان چکی به مبلغ 22 مارک نوشتم. و کج در بالای آن قید کردم تنها برای تسویه حساب. پاکتی را که زن جوان، کارت پستال ها را داخل آن گذاشته بود برداشتم. کارت ها را توی جیبم منداختم و چک را داخل پاکت گذاشتم. پاکت نامه از ارزانترین نوع پاکت نامه ها بود. مثل پاکت هایی که آدم از اداره مالیات یا پلیس دریافت می کند. وقتی آدرس ویک ویکبر را روی آن می نوشتم، جوهر پخش شد. مجبور شدم آن را خط بزنم و دوباره آهسته بنویسم. از پول خوردی که زن جوان به من داده بود، یک سکه یک مارکی برداشتم و آن را به زن دادم و گفتم لطفاً تمر دهفینیکی و دوفینیکی بدهید. او که شوی را باز کرد، تمرها را از دفترچه بیرون آورد و به من داد. و من دوتا روی پاکت چسبندم. درم میخواست بیشتر پول خرش کنم. باقی پول خورد را از روی پیش خام نداشتم و در قفصها جستجو نگاه میکردم. از دفتر کلاسورهایی که ما در مدرسه مهندسی استفاده میکردیم هم آنجا بودند. یکی را انتخاب کردم که با چرم نرم سبز رنگ جلد شده بود و آن را برای بسته بندی روی پیش خان گذاشتم و او دوباره لوله مقوایی مخصوص کاغذ بسته بندی را به حرکت درآورد. وقتی بسته کوچک را برداشتم میدانستم که ادویک هرگز از این کلاسور به منظور یادداشت‌های های استفاده نخواهد کرد. وقتی دوباره از خیابان نتسم باز میگشتم به نظرم می رسید که این روز هرگز به پایان نخواهد رسید. تنها نور لامپ ویترینم مغازه ها کمی روشنتر شده بود دلم میخواست می توانستم بیشتر پرخاش کنم اما هیچ کدام از ویترین ها نظرم را جلب نمی کرد که چیزی بخرم فقط قدری جلوی یک مغازه تابوت فروشی ایستادم نگاهی به جعبه های به رنگ قهوه تیره و سیاه انداختم که فقط نوری ضعیف بر آنها افتاده بود به هم ادامه دادم و وقتی دوباره داخل خیابان کورپ ماخر پیشیدم به اولاف فکر کردم آنطور هم که به نظرم می رسید صحبت کردن درباره آن موضوع با او به این سادگی ها نبود و من میدانستم. او مرا خیلی وقت بود که می شناخت و مرا خیلی خوب هم می شناخت اما من هم او را می شناختم وقتی او را می بوسیدم گاهی وقت در پس چهره صاف و قشنگ دخترانش جمجمه مرده پدرش را می دیدم ای که یک کلاه نمدی سبز رنگ بر سر داشت من و او به کمک هم به پدرش خیانت کرده بودیم، آن هم به شکلی زیرکانه و پرمنفعت، مثل زمانی که اجاق برخی را کش رفته بودم. پول بیشتر و بهتری به دست می آوردیم. اگر قطعات آهنپاره را به کمک گروهی از کارگران به فروش می رسندیم، اگر وسایل و قطعاتی را که چیزی به ویران شدن و از بین رفتنشان نمانده بود، اوراق می کردیم. بعضی از اتاقها که تنها با نردبانهای بلند به آنها راه پیدا میکردیم کاملا ویران نشده بودند. و ما آشپزخانه ها و هممام هایی را کشف کردیم که در آنها اجاق ها، و پیچ ها هنوز کاملا نا بودند. هر قلاب دیواری میناکاری شده قلاب که هنوز به آنها حله های دست آویزان بودند. شیشه های دستشویی که روی آنها هنوز رژ لب و ماشین ریش تراشی کنار هم قرار داشتند. وانهایی که در آنها هنوز آب بود و کف صابون به شکل لکه های بزرگ کف آن تهنشین شده بود. آب زلال، آبی که عروسک های پلاستیکی که بچه ها با آنها بازی کرده بودند، در آن شناور بودند. بچه هایی که در زیر زمین خفه شده بودند. من در آینه نگاه کردم، در آینه‌ای که آخرین بار انسانهای خود را در آن دیده بودند و چند دقیقه بعد به دیار ابدی شتافته بودند. آینه هایی که من از شدت خشم و تنفر چهره خودم را در آن با چکش تکه تکه کردم. نقر ای، روی روشه لب و ماشین ریش تراشی ریخت. چوب پنبه راه آبوان را بیرون کشیدم. آب در چهار طبقه جاری شد و عروسک های پلاستیکی بچه ها کم کم روی کف گچی وان حمام آرام گرفتند. در گوشه یک چرخ خیاطی قرار داشت که سوزن هنوز در یک تکه پارچه کتانی قهوه‌ای که احتمالا می‌خواستند از آن یک شلوار پسرانه بدوزند فرو رفته بود و هیچ کس نمی توانست درک کند وقتی که من این چرخ خیاطی را از جلوی نردبان و دری که باز بود به پایین پرتاب کردم و چرخ روی خرد سنگ ها و آواره های فرو ریخته قطع قطع شد اما بیشتر از هر چیز دوست داشتم چهرهی خودم را در آینه هایی که پیدا میکردیم خرد کنم خورده شیشه های مانند صدای شرشار آب همه جا پخش میشد تا اینکه ویک وبرت عجبش برانگیخته شد که چرا هرگز آین ای در میان این خرت های آهنی دیده نمی شود. و یک شاگرد دیگر دستور پیدا و جدا کردن اجناس به درد بخور را گرفت اما وقتی مرا آنجا فرستادن که کارآموزی از بالا به پایین پرد شده بود کاراموزی که شبنگام از دیوار یکی از خانه‌های ویران شده بالا رفته بود تا یک ماشین لباسشویی برقی را بردارد. هیچکس کس نمی توانست این معما را حل کند که او چگونه به طبقه سوم راه پیدا کرده بود. اما او این کار را کرده بود و می‌خواست که ماشینی به بزرگی یک کمد لباس را با تناب پایین بفرستد. ولی تناب پاره شده بود. وقتی ما رسیدیم چخ دستیش هنوز توی خیابان زیر آفتاب بود. پلیس آنجا بود و یک نفر که با متر طول تناب را اندازهگیری میکرد سرش را تکان میداد و به بالا نگاه میکرد به جایی که هنوز در آشپزخانه باز بود و یک جارو هم دیده میشد که به یک دیوار آبی رنگ تکیه داده شده بود ماشین لباسشویی مثل گردو باز شده بود که آن به بیرون پرتاب شده بود اما جوانک مثل آدمی آسیب ندیده روی تلی از تشکهای پوسیده درون لجنزار فرو رفته بود و دهانش مثل همیشه تلخ بود دهان یک انسان گرسنه که اعتقادی به ادالت و برابری در این دنیا ندارد اسم او آلوئیس فروکلار بود و تازه سه روز بود که پیش ویکوبر مشغول به کار بود او را توی ماشین جنازهکش گذاشتم و زنی که کنار خیابان ایستاده بود از من پرسید برادرتان بود و من گفتم بله او برادرم. و اولا را بعد از ظهر دیدم، دیدم که چگونه قلم را در دواددان با جوهر قرمز فرو می کند و با خطکش روی اسم جوان را در لیست حقوق بگیرها خط می کشد. یک خط تمیز و صاف به قرمزی خون، به سرخی یقی شان هورست. لبهای ایفیگنی و قلب آس دل. هدویگ سرش را به تکیه داده بود. پلوور رنگش بالا کشیده شده بود و های سفیدش مانند بطری هایی که از بین گلوگاه آنها صورتش بیرون زده باشد روی میز قرار داشتند و صورتش گودی گلوی باتری‌ها را میپوشند چشمانش قهوهٔ تیره بودند اما زیر آن زرد روشن دیده میشد تقریبا مثل رنگ اصل و من سایه خودم را در چشمانش میدیدم اما او همچنان به جای دیگری چش دوخته بود. او به داخل راهروهایی نگاه می کرد که من دقیقا دوازده مرتبه با دفترهای تمرین زبانهای جدید وارد آنجا شده بودم. چیزی که از آنها تنها خاطره ای تیره و نه چندان روشن برایم برجای مانده است. کف قابل شست و قرمز رنگ اما شاید هم می توانست قهوه تیره باشد. چون نور زیادی داخل این راهرو را روشن نمیکرد. عکس پدرش کلاه دانشجویی و امضای عجیب و قریب یک گروه دانشجویی بوی چای نعنا تنباکو و قفسه مخصوص ریز نمرات که یک بار توانستم عنوان دفترچه رویی را بخوانم گریک رقص آنیتا حالا آرزو کردم ای کاش آن راه را را مثل او درست میشناختم و در خاطرم به دنبال اشیایی میگشتم که شاید آنها را فراموش کرده بودم حافظم را مثل آستری کُت تا سکه‌ای را که آنجا بود در بیاورم سکه‌ای که ناگهان دارای ارزش می شود. چون آخرین و تنها سکه است سکه‌ای برای دو نان کوچک برای یک سیگار یا برای یک بسته قرص نعنا دانه های سفید و گرد آن با مزه تند و شیرینش میتواند گرسنگی را از بین ببرد همچون ریه ای که دیگر از کار افتاده است ولی هوا واردان می کنند. وقتی آدم آستری را شکاف می‌دهد، گرد و قبار روی دست می نشینند. پرس های پشم و انگشتن در جستجوی و هستند که شخص می‌داند یک دهفینیکی است اما امیدوار است که یک سکه یک مارکی باشد. اما تنها یک سکهی دهفینیکی بود و من آن را که خیلی هم با ارزش بود به دست آوردم. هنگام خروج از خانه همیشه وقتی بیرون میرفتم میدیدم که بالای در ورودی عکسی از عیسی مسیح آویخته شده بود و جلوی آن یک چراغ نفتی هدویگ گفت بروید من اینجا منتظر شما میمانم طول میکشد این را بدون اینکه به من نگاه کند گفت گفتم این کافه ساعت هفت میبندد آیا از ساعت هفت دیرتر خواهد شد گفتم: نه، من تا موقع اینجا خواهم بود. آیا شما اینجا هستید؟ گفت: بله، من اینجا خواهم بود. بروید. کارت‌پاستاها را رو روی میز گذاشتم، ها را کنار آن و به خیابان یودن برگشتم. سوار ماشینم شدم و هر دو بسته هدیه برای هدویک را روی صندلی عقب انداختم. می دانستم که تمام این مدت از ماشینم وحشت داشتم. اما می توانستم ماشین برانم، همانطور که سیگار کشیدن، وقتی آن طرف دیگر خیابان ایستاده بودم و به در درچشت دوخته بودم، به خوبی انجام شده بود. راندن ماشین به خودی خود انجام می گرفت. فشار دادن دکمه ها، کشیدن دکمه ها، پایین و بالا بردن اهرم ها. ماشین می راندم، آنگونه که شخص در خواب رانندگی می کند. این عمل بدون عیب آهسته و تمیز صورت می گرفت. به نظرم می رسید که گویی در میان دنیای ساکت و بیسر و صدا عبور میکنم وقتی از تقاطای خیابان یودن و کرب ماخر میگذاشتم، تا به طرف میدان رونتگن بروم هدویک را دیدم که با پلوور سبزرنگ در اعماق تاریکی خیابان کرب ماخر نابدید می شود. من وسط چهار راه دور زدم و به دنبال شرکت کردم. او میدوید و بعد هم سر صحبت را با مردی باز کرد که نانی زیر بغل داشت و از آن طرف خیابان میآمد. ماشین را متوقف کردم. چون خیلی نزدیک بودم دیدم که مرد سعی میکند با حرکات دست برایش چیزی را توضیح دهد. هدویک به دویدن ادامه داد و من به آرامی ترقیبش میکردم. وارد خیابان نتس شد. پس از طی مسافتی به مغازه لوازم تحریر فروشی رسید که من کارت ها را خریده بودم. سپس به خیابانی تاریک و کوتاه پیچید که من آن را نمی‌شناختم. دیگر نمی دوید کیف دستی سیاهش در دستش تاب میخورد و من برای یک لحظه نور بالا زدم چون نمیتوانستم خیابان را درست ببینم. وقتی چراغم دقیقا روی در ورودی یک کلیسای کوچک افتاد که هدویک همان لحظه وارد آن شد، از خجالت آب شدم. در نظر خودم مثل آدمی می‌اومدم که مشغول فیلمبرداری است. و با نورفکنی که به همراه دارد، ناگهان تاریکی شب را می شکافد و زوج جوانی که هم دیگر را در آخوش اند را به دام می اندازد